بسم الله الرحمن الرحيم طائفه من احكام اسم الاشاره طائفه يا قسمتي أز احكام اسم اشاره سومين معرفه الأمثلة ذلك البستان جميل يا علي ذلك البستان جميل يا فاطمة ذلكما البستان جميل يا اخويا ذالکم البستان جمیل یا اصدقائی ذالکن البستان جمیل یا سیداتی اونی اسم اشاره همیشه باید مطابق باشه با مشارعله اسم اشاره مطابق باشه باشه در زبان ها خودمون اینجوریه ولی خب مال خودمون دیگه مذکر و معنیس نداره آن اینه چه مذکر و چه مهننس بگیم دیگیم این ولی عربی نه مذکر مهننس داره در زبان خودمون تصمیجن یکی هستن اونجا تصمیجن با هم متفاوتن این تطابق ها باید باشن مشارعله در تمام امسله بستان هست اون باغ, اون باغ. ولی مخاطب فرق میکنه ببینی یک جا مخاطر علی هست یک جا فاطمه هست یک جا دو برادر هست یک جا دوستان هست یک جا سیدات هست ها؟ یک کافی روی اسم اشاره می آورن. این کاف میگن کاف خطابه این کاف مطابقت داره با اون شخصی که تو داری باش صحبت میکنی مثلا موقعی که من میگم اون پنجره اگر شما دو نفر باشید زمی رو اون موقع چکر میکنم؟ مصنع بکار میبرم اگر شمایی که با دارم صحبت میکنم سه نفر باشید زمی رو جمع بکار میگرم مذاکر باشید زمی رو مذکر بکار میگرم موننس باشید زمی رو چی بکار میگرم؟ موننس به خاطر میبینیم که کاف تغییر میکنه ولی دستان چون مفرده ذا اسم اشاره ما هست اسم اشاره رو در کتاب قبلی خوندیم ذا برای مفرد مذکر بود وی تی ذه ته برای مفرد موانس بودن ذانی برای مصنع مذکر بود تانی برای مصنع موانس اولای برای جمع بود چه مذکر چه موانس این آرز در کتاب قبلی خوندیم اینجا میخواد در مورد این کافه خطاب توضیح بده پس اینجا تون فقط علی هست یک نفره میگه ذالک البستان و جمیلون اون باغ زیبا هست مخاطبش اینجا کی هست؟ علی هست یه نفره گفت ذالکه ولی بعدش که فاطمه میشه مخاطب میشه میگه ذالکل بستان و جمیلون مال شما کی رو کسره داده در این مثال یا فتح این کتاب فتحه داده اشتباهی ذالکل بستان و جمیلون مخاطب اینجا کی هست؟ آه. فاطمه پس زمانی که مخاطب شما زنی بود با یه زنی داشتی صحبت میکردید ميجيت ذلك البستان جميله. شو ميجيت؟ در قرآن و مدي ذني ك. در صورة يوسف شو مدي؟ ذني ك. بخاطيش؟ ذَلِكُمَا مما علمني ربي شما این زمیر مخاطر زیادی در قرآن اومده است شما کجایید؟ شیخ شیخ سهل زمائر زیادی در قرآن اومده است ذالک مخاطب اینجا هر شخص مؤمنی به تنهایی است ذالکوما ذالکوم در سوره یوسف در مورد اون زنان که اون جنب بودن که اومده بود ذالکنا چی ذالکنا الذی لم تننی فيه چون مخاطب ما زن بودن این جمله ماله زن عزیز بود که به اون زنا گفت ذالکن مشارعله یوسفه میگه اینی بود که شما زنا منو در موردش ملامت میکردید ذالکن لذی لمتن نیفی چون مخاطبات جمع ماننسند زمیر هم چی اومده است؟ ماننس جمع پس این زمیر زم این زمیری که میاد میچسبه به بزا اینو میگن زمیر خطاب اسم اشاره زا هست اونم حرف خطاب هست ذ بستان و جمیلون اینجا مخاطب فاطمه هست ذلك کل بستان جمیلون اینجا دو نفر هستن چون ااخ یا دو تبرادر شده در ختاب قرار میده. اخ این دو برادر من، ظال کومل بستان و جمیلون، ذ کول بستان و جمیلون، ذ کول بستان جمیلون اینجا مخاطرب یاسهدادی هست اونجا اصلقای. خب ترکیبشون این هست. ذالک البستانو جمیلون ذا میگیم مبتدا اسم اشاره محلن مرفو کاف حرف خطاب البستانو بدل از ذا هست و جمیلون هم خبر هست اون باغ زیبا هست اون باغ با اون یکی هست اگر گفته بود ذالک بستانون اون موقع داستان فرق می کرده اون موقع بستانون می شد چی؟ خبر اون باغ هست ونچاس اما اون باغ زیبا هست پس اینجا میشه مبتدا البستانو بدل ازش و جمیلون همیشه چی بدل یا عطف بیان جمیلون میشه خبرش اگر الفلامی باشه خبر میشه اگر الفلامی نداشته بود آره نه، بود نه مشار الیک نقش نیست نعم مثلا مشاره. اعراب نیست مشار آره اون موقع خبر میشه بستان آن، اون بستان هست می خبر پس این به این مباحثی که مربوط به این بود اینا بودن سد و هشتا قایدش توزیح می ده یتابقو اسم الاشارتی المشاره الهی یتابقو مطابقت می کند اسم اشاره المشاره اله, مشار اله را. المشاره اینجا مفهول بهیست اسم و فاعلش هست مطابقت میکند اسم اشاره مشارعله را در چی چیزایی؟ در مذکر بودن و موننس بودن بستان مذکر زا هم چیست؟ اگر ما به سمت یک زنی اشاره کنیم میگیم ذهی امرأتون اون چیست؟ زن است متوازی آقای شخ ولی بستان چیست؟ بستان مذکره اگر دو تا باشن میگیم ذانی رجلانی اون دو, دو تا چه هستن؟ دو مرد هستن ذانی آلمانی ها ذانی آلمانی متواضعانی اون دو تا عالم چه هستن؟ متواضع هستن خب به این شکل هست پس یطابق اسم اشاره المشار الیه مطابقت کند اسم اشاره با مشار الیه فی تذکیره و تانیسه در مذکر و مؤنث بودن اگر اونی که تو به سمتش اشاره میکنی مذکر بود باید اسم اشاره همچی باشه مذکر باشه اگر اونی که به سمتش اشاره میکنی مؤنث بود باید اسم اشاره هم چی باشه مؤنث باشه و افرادی و تثنیه و جمع اگر مشار اله جم باشه زمیر ها ایچی ایسو هم باش باشه چی باشه مثلا هاولاء ها البساطین هاولاء البساطین جمیلتون هاولاء ها البساطین جمیلتون تو ایچو دید خوب پس و در مذکر و محننس بودن مفرد و مصنع جمع بودن باید با هم دیگه چکار باشن مطابقت داشته باشه اسم اشاره با مشارعله و تطابق کاف و المخاطب فی ما ذکره و مطابقت میکنه کاف با مخاطب در تمام انتو که ذکر شد یعنی آقا اگر اونی که مخاطب تو هست یک نفر مرد بود این کافو به شکل مفرد می آوری و مذکر اگر مذکر بود اونی که مخاطبت مهمه اگر مخاطبت مهنس بود کافو به شکل چی بیاری مهنس اگر جمع مذکر بود کم و بکار می بری اگر جمع مهنس بود کنه رو بکار می بری میگی ذالکه اگر یک نفر مرد بود مخاطبت که خود شما موقعی که اشاره میکنی برای یک انسان اشاره میکنی موقعی که میگی اون کتاب دیوانه که نیستی بیای خودت تنها بگی اون کتاب برای شخصی داری اشاره میکنی اگر اون شخصی یک نفر مرد بود میگی ذالکه موننس بود چی میگی؟ ذالکی اگر دوتا بودن ذالکو اگر زیاد زن بودن میگی ذالکو اگر یک جمع مذاکر بودن میگی ظالی کم چی میگید؟ ظالی کم که در قرآن اتفاقا از این امثال خیلی زیاد است. در سوره یوسف یوسف برای اون دو نفر برای اون دو نفر که میخواست برایشون چی کنه؟ تعکن چ گفت ظظ کوما برانانی چی گفت؟ حافظ سب ذهن تو کار بیااند ذهن من این لحظه کار نمی کند. دوتا حافظ در متاسفانه خاموش البته تقصیری ندارن چون حضور ذهنی واقعا سخت شده از این حز زهنها بیشتر به سمت مسائل دیگر متاسفانه رفتد در سوره یوسف اتفاقان اومده است برحانان من ربی آقای حافظ سهل فضالکما برحانان من ربی کما اینجوریه یا نه سوزه <تصفيق> هستی هاری دیمی کنه این لحظه خب خیر است. بیریم جلوتر پس اینا احکامات چی بودند احکامات اسم اشاره بود